فصل نوزده در این وقت پیلاتوس دستور داد ایسا را تازیانه زدن و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتن و قبایی ارغوانی رنگ به او پوشانیدن و پویش او می آمدن و میگفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدن بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و با آنها گفت ببینید او را پیش شما میآورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم و ایسا در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد پیلاتوس گفت ببینید آن مرد اینجاست وقتی سران کاهنان و معموران آنها او را دیدن فریاد کردند، مسلوبش کن مسلوبش کن پیلاتوس گفت شما او را ببرید و مصدوب کنید چون من هیچ تقصیری در او نمی یهودیان پاسخ دادند ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد زیرا ادعا می کند که پسر خداست. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش حراسان شد و باز به قصر خود رفت و از ایسا پرسید تو اهل کجا هستی؟ ایسا به او پاسخی نداد. فیلاتوس گفت: آیا به من جواب نمیدهی؟ مگر نمیدانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مسلوب نمایم. عیسی در جواب گفت: تو هیچ قدرتی بر من نمیداشتی اگر خدا آن را به تو نمیداد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود، تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد ولی یهودیان دائما فریاد می کردن. اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است وقتی پیلاتوس این را شنید ایسا را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان اپری آن را جباتا می بر مسند قضاوت نشست وقت تهیه فسح و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجاست ولی آنها فریاد کردند ایدامش کن ایدامش کن مسلوبش کن پیلاتوس گفت آیا میخواهید پادشاه شما را مسلوب کنم سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیسر نداریم سرانجام پیلاتوس ایسا را به دست آنها داد تا مسلوب شود. پس آنها ایسا را تحویل گرفتند. ایسا در حالی که صلیب خود را میبرد به جایی که به محله کاسه سر و به ابری ججتا مصومص رفت. در آنجا او را به صلیب میخوب کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او مسلوب کردند. و عیسی در وسط آن دو نفر بود پیلاطس تقصیرنامهای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود عیسی ناصری پادشاه یهود بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتن، ننویز پادشاه یهود، بنویس او ادعا میکرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد، هرچه نوشتم، نوشتم. پس از اینکه سربازان ایسا را به صلیب میخوب کردند لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت. ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند پس آنها به یکدیگر گفتند آن را پاره نکنیم بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد به این ترتیب کلام خدا که میفرماید لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشا کم قرعه به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست میداشت ایستاده است به مادر خود گفت مادر این پسر توست و بعد به شاگرد خود گفت و این مادر توست و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی ایسا که همه چیز انجام شده است گفت کشنم و بدین طریق پیشگویی پیشگوی کلام خدا تحقق یافت. خمره پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند. و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند وقتی عیسی به شراب لب زد گفت تمام شد بعد سر به زیر افکند جان سپرد چون روز جمعه با روز تهیه فسح مصادف بود و یهودیان نمیخواستند اجساد مصلوب شدگان در آن ثبت بزرگ بر روی صلیب بماند از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سراب بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مسلوب شده بودند شکستند اما وقتی پیش عیسی آمدند دیدند که او مرده است از این رو ساقهای او را نشکستند اما یکی از سربازان نگزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیش روی کتاب مقدس که میفرماید هیچ که از استخوان های نخواهد شد تحقق یابد و در جای دیگر میفرماید آنها به کسی که نگزه زدن نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامعی که به ترس از یهودیان مخفیان شاگرد ایسا بود پیش پیلاتوس رفت و اجازه خاص که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد ایسا را برداشت. نیغو یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز آمد و با خود مخلوطی از مر، و چوب اود که در حدود پنجاه کیلونی شد آورد، آنها بدن ایسا را بردن و مطابق مراسم تکفین یهود در پارچه کتانی با داروهای معطر پیچیدند، در نزدیکی محلی که او مسلوب شد باقی بود، و در آن باغ قبر تازهی قرار داشت جنوز کسی در آن دفن نشده بود، چون شب عید فصح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت عیسی را در آنجا دفن کردند